این داستان سندرلا. روزی روزگاری زیر گنبد آبی آسمون مرد ثروتمندی بود که همسرش در بستر بیماری افتاده بود زن چون میدونست که مرگش به زودی فرا میرسه دخترش رو نزد خودش خواند و گفت وقتی من از دنیا رفتم سعی کن همچنان خوب و مؤمن باشید. مطمئن باش که خدا در هر مصیبتی تو رو یاری میکنه. من هم مثل فرشته نگهبان به کمکت میام. مادر بعد از این سفارش ها چشمهاش رو بست و به خواب ابدی فرو رفت. دخترک هر روز بر مزار مادرش میرفت و گریه میکرد. آخرین حرفای مادرش همیشه آویزه گوشش بود و با مردم رفتاری خوب داشت و مهربان بود. زمستان شد و مزار زن رو پوششی از برف خیره کننده پوشاند. وقتی آفتاب درخشان بهار دوباره به زمین گرمای تازه بخشید شوهر هم زن دیگری برای خود برگزید. این زن از شوهر قبلی خود دو تا دختر داشت. هر دو دختر ظاهری زیبا ولی باطنی پست و شرور داشتند و طولی نکشید که روزگار را رو به خواهر ناتنی تلخ کردند چون بهش حسادت میکردند و چشم دیدنش رو نداشتند. بالاخره هم مادرشون رو واداشتن تا خواهر ناتنی رو به آشپزخانه بفرسته. اونها میگفتند این دختر احمق لایق اون نیست که با ما توی اتاق پذیرایی بشینه. اون نباید مفت غذا بخوره، اونو بفرستین به آشپزخانه تا همراه کلفتا کار کنه. دختر همه لباس خوب و قشنگ خواهر ناتنی رو گرفتن و اونو وادار کردن که پیشبندی کوهنه ببنده و کفش چوبی بپا کنه. بعد هم همونطور که اونو مسخره میکردند به طرف آشپزخونه می و میگفتند، به این شاهزاد خانم زیبا نگاه کنین ببینین چه لباس زیبایی به تن کرده. دخترک به اجبار هر روز از صبح تا شب کار میکرد. باید زود بیدار میشد تا از چاه آب بکشه، اجاق رو روشن کنه، کارهای مربوط به آشپزی و نظافت رو انجام بده. از طرفی خواهرای ناتنی به بحانه های گوناگون نمک به زخمش می‌پاشیدن و باهاش بدرفتاری میکردن. هر بار که باهاش روبرو می‌شدن، با توهین و لگد سیندرلا رو به طرف خرمن نخود یا کلم های توی حیات پرت میکردن. شب که میشد با وجود خستگی از کار روزانه جای مناسبی برای خوابیدن نداشت در هوای سرد زمستون مجبور بود توی اجاق بخزه و روی خاکستر گرم اجاق دراز بکشه برای همین صورتش سیاه شده بود و دیگه اونو سیاه سوخته صدا میکردن روزی پدرشون میخواست به بازار مکاره بره پیش از رفتنش از خواهرای ناتنی پرسید چه هدیهای دوست دارن براشون بیاره. دختر بزرگتر گفت یه دست لباس زیبا. دختر کوچیکترم گفت یه گردم بند مربارید. دست آخر پدر پرسید خب سیندرلا تو چه هدیهی میخوای؟ سیندرلا در جواب گفت لطفا برای من اولین شاخه درختی رو بیارین که در راه برگشت به کلاهتون میخوره. پدر برای دخترای ناتنی لباس زیبا و گردنبند مربارید خرید. هنگام برگشت از بیشه ای عبور میکرد که درختاش شاخه انبوه داشت. شاخه بلند و کشیده یک درخت فندق به کلاه اون چسبید. ایستاد همون شاخه رو برید و به همراه خودش آورد. به محض اینکه وارد خونه شد، هدیه‌های دخترای ناتنی رو به اونها داد و شاخه درخت فندوق رو به سیندرلا. سیندرلا از پدرش بیش از دو خواهر دیگه که هدایای نفیس و زیبا گرفته بودن تشکر کرد. بعد هم رفت و شاخه درخت رو روی مزار مادرش کاشت. اونقدر گریه کرد که خاک مزار با اشکاش نرم و خیس شد. شاخ رشد کرد و درخت زیبایی شد. سیندرلا روزی سه بار کنار مزار مادرش می رفت. گریه می کرد و دعا می خوند. هر بار پرنده کوچک و سفیدی می آمد. روی شاخه درخت می و آرزوهای سیندرلا رو برآورده میکرد و اون چرا خواسته بود از بالای درخت براش مینداخت. مدتی گذشت، پادشاه اون سرزمین جشن بزرگی ترتیب داد که قرار شد در سه شب برگزار بشه. تمام دختران جوان و زیبای سرزمین به این جشن دعوت شده بودن تا پسر پادشاه اونها رو ببینه و یکی از اونها رو به همسری انتخاب کنه. این خبر به گوش دخترای ناتنی رسید. اونا از اینکه میتونستان در جشن پادشاه شرکت کنند از خوشحالی تو پوست خودشون نمیگنجیدن. دخترا شتاب زده سیندرلا رو صدا زدند که موهاشون آرایش کنه و به کفشهاشون سگکهای طلایی بزنه تا در جشن قصر پادشاه شرکت کنند. سیندرلا هم وقتی این خبر رو شنید به حیجان اومد. جون رقص و شادی و سرور و دوست داشت. او هم دلش میخواست به همراه خواهرای ناتنیش به مراسم جشن بره. برای همین نزد مادر ناتنیش رفت و از او تقاضا کرد که اجازه بده همراه اونا به جشن بره. مادر ناتنی سر سیندرلا داد زد و گفت، تو که سرت و پاد پر از دوده و کثافت میخوای به جشن بری که چیکار کنی؟ تازه نه لباس داری نه کفش مخصوص رقص سیندرلا همچنان اصرار داشت و از نامادریش تقاضا میکرد کرد که اجازه بده اونم به قصر بره بالاخره نامادری داد زد اگه دلت میخواد به جشن بیای اول به آشباز خونه برو من یه خاک انداز پر دانه کتون توی خاک اجاق ریختم. اگر تونستی در عرض دو ساعت اونا را از داخل خاکستر جمع کنی و بران بیاری اون وقت اجازه داری به جشن بیای سیندرلا به حیات خلبت رفت وارد باغ شد و با صدای بلند خواند ای قمری اگر به یاری من نشتابید، از دستم کاری ساخته نیست ای پرندگان آسمان بیایید و دانه ها را جمع کنید چون من هر قدر هم که تلاش کنم قادر نیستم به موقع این کار رو به پایان برسونم. در این هنگام دو کبوتر سفید کچیک پرواز کردن و اومدن. روی پنجره آشپسخونه نشستن. در پی اون دو دسته دیگر از پرندگان آسمان با سر و صدا و حیجان بسیار از راه رسیدن. اونها در حالی که برای سیندرلا سر تکون می دادن شروع کردن به جمع کردن دونه ها از داخل خاکستر. طولی نکشید که خاکانداز پر از دانه شد. کار یک ساعت تمام شده بود. بعد پرنده ها زنون از آشپسخونه دور شدند. دختر جوان خوشحال و با این امید که دیگه مانعی برای رفتن به جشن وجود نداره خاکنداز پر از دونه ها رو نزد مادر ناتنی برد. ولی مادر ناتنی گفت نه سیندرلا تو لباس مناسب نداری. رقص هم که بلد نیستی. اگه بری مسخرت میکنن ولی سیندرلا همچنان با گریه و زاری از مادر ناتنیش میخواست که بهش اجازه بده به جشن بره مادر ناتنی که دیگه زله شده بود برای اینکه از شر سیندرلا راحت بشه این بار دو تا خاکانداز پر از دونه در خاک سر ریخت و گفت شرط رفتنش اینه که دو ساعته همه دونه ها رو جمع کنی زن سنگدل فکر میکرد که سیندرلا هرگز نمیتونه این کار رو دو ساعت انجام بده. ولی اون با عجله به آشپسخونه رفت، وارد باغ شد و دوباره پرنده ها رو فراخوند. پرنده ها مثل دفعه پیش اومدن و در کمتر از یک ساعت همه دونه ها رو جمع کردن و در خاک ها ریختند. همین که پرنده ها دور شدند سیندرلا این بار با امید زیاد به اینکه مادر ناتنی دیگه بهانه نیاره نیاره های پر از دونه رو نزد مادر ناتنی برد ولی مادر ناتنی گفت سیندرلا اینقدر نزن تو لباس مناسب نداری رقصیدن هم بلد نیستی اگر به مراسم جشن بری باعث آبروریزی میشی بعد پشتشو به دختر بیچاره کرد دست دوتا دختر مقرورشو گرفت و با عجله راهی جشن شدن دیگه کسی توی خونه نبود سیندرلا راه افتاد و رفت سر مزار مادرش زیر درخت فندوق نشست و بلند بلند آواز خوند ای درخت کوچیک خودت رو بتکون مرا با نقره و طلا بپوشون در این لحظه پرنده روی درخت، لباسی زیبا از جنس ابریشم با سوزندوزی های و نقره و یک جفت کفش طلایی رنگ پایین انداخت که نوری خیره کننده داشت. سیندرلا اونها رو پوشید و با عجله راهی جشن شد. وقتی با اون شکوه و زیبایی و با اون لباس و کفش گرون قیمت وارد سالن رقص شد، مادر و خواهرای ناتنیش اونو نشناختن. و حتی تصور کردند که او یک شهزاد خانم خارجیه فکرش رو هم نمی که این دختر همون سیندرلا باشه پسر پادشاه دلباخته این دختر ناشناس شد و چندین بار باهاش رقصید حتی دست آخر گفت که به غیر از او حاضر نیست با کس دیگه برقصه سیندرلا تمام شب همرقص پسر پادشاه بود تا اینکه وقت رفتن به خونه رسید شاهزاده به سیندرلا گفت که مایل اونو تا خونش همراهی کنه و خونش رو یاد بگیره اما سیندرلا این پیشنهاد رو نپذیرفت و در یک لحظه مانند پرنده‌ای به طرف لونه یک کبوتر پرید و غیب شد شاهزاده حیرت کرد او منتظر شد تا همه مهمونا قصر رو ترک کنن و اونگاه به پدرش گفت اون دختر عجیب مثل ای به لانه کبوترها پناه برد. از اون طرف مادر ناتنی که آخرین مهمون بود به شک افتاد و با خودش گفت نکنه اون سیندرلا باشه باید سر در بیارم. بعد به شاهزاده گفت خدمه خودتون رو بفرستین تا لانه کبوتر رو خراب کنن. اونها در یک چشم به هم زدن لانه رو خراب کردن و اثری از دختر نبود. وقتی مادر ناتنی با دخترهاش به خونه برگشت، دید که سندرلا با لباس دود گرفته روی خاکستر اجاق دراز کشیده و چراغ کوچیک و کسیف روی لبه دودکش روشنه. در واقع سندرلا از پشت لانه کبوتر پایین پریده بود و دوان دوان خودش رو به درخت فندق رسونده بود. اون با عجله لباسهای زیباش رو درآورده بود و روی مزار گذاشته بود. بعد هم لباس کهنه آشپزخونه رو به تنگ کرده بود. وقتی به خونه برمی گشت تا روی خاکسترها دراز بکشه، پرنده ها هم اومده بودن و لباسهای رقص اون رو با خودشون برده بودن. طولی نکشید که پادشاه جشن دیگری به راه انداخت. پدر سندرلا، مادر و خواهرهای ناتنی سندرلا هم دعوت شده بودند. به محض اینکه اونها راهی جشن شدند سیندرلا به طرف درخت فندق رفت و گفت ای درخت کوچک خود را بتکان مرا با نقره و طلا بپوشان این بار پرنده ها لباس تر از دفعه پیش آوردند وقتی سیندرلا با اون لباس زیبا و فاخر وارد سالان جشن شد همه حاضرا از زیبایی خیره کننده اون انگشت به دهن موندن. پسر پادشاه که تا قبل از اومدن اون حاضر نبود با هیچکس به از جا بلند شد. دست سیندرلا را گرفت و به طرف صندلی مخصوص خودش برد وقتی هم شروع کرد به تا پایان شب فقط با سیندرلا رقصید. شاهزاده مرتب میگفت فقط او هم رقص منه. در پایان شب دوباره شاهزاده میخواست سیندرلا رو تا خونش همراهی کنه و محل زندگیش رو پیدا کنه اما او بار دیگر فرار کرد و با شتاب خودش رو به باغ پشت قصر رسون که پر از درخت زیبای گلابی بود و مانند سنجاب به سرعت از لابلای درختان دوید و دور شد. شاهزاده هم نتونست اونو تعقیب کنه وقتی پادشاه اومد، دستور داد درختها را از بیخ ببرند. اما سیندرلا انگار آب شده بود و به زمین فرو رفته بود. مادر ناتنی این بار نیز ترسیده بود که نکنه اون دختر سیندرلا باشه. ولی وقتی به خونه رسید و اونو دید که طبق معمول با لباس های آشپزخونه روی خاکسترها دراز کشیده نفس راحتی کشید. سیندرلا زمانی که دیگران در جستجوش جوش بودند خودش را به درخت فندوق رسونده بود در اونجا پرنده‌ای لباس آشپزخانه‌اش رو اوورده بود و لباس جشنو از او تحویل گرفته بود سومین جشن برپا شد و مادر و خواهرای ناتنی هم به جشن دعوت شدند سیندرلا دوباره به مزار مادر خودش پناه برد و رو کرد به درخت و گفت ای درخت کوچک خودت رو بتکان مرا با طلا و نقره بپوشان. آنگاه، پرنده، یکی از زیباترین و با شکوه ترین لباس ها رو به همراه یک جفت کفش زرین درخشان برای او آورد. وقت سیندرلا با اون لباس پر از زرق و برق وارد مجلس شد، همه از دیدن زیباییش غرق در حیرت شدن. شاهزاده شروع کرد به رقصیدن با سندرلا، و تمام مدت پیشنهاد دیگران رو برای رقصیدن رد میکرد. جشن که تموم شد شاهزاده مایل بود اونو تا خونش همراهی کنه. ولی سیندرلا در یک چشم به هم زدن دور شد. طوری که باز هم شاهزاده نتونست رد پای ازش پیدا کنه. اما این بار پسر پادشاه برای اینکه خونه دختر خانم دلروبا رو پیدا کنه هیلهی به کار برد. اون دستور داد دور تا دور قصد رو چاله بکنن و به این ترتیب این بار موقع بازگشت یک لنگه از کفش سیندرلا در چاله افتاد. لنگه کفشی زیبا، زریف و زرین. صبح روز بعد خدمتکاران شاهزاده در شهر جار زدند که شاهزاده فقط کسی رو به همسری انتخاب میکنه کنه که پاش هم اندازه اون لنگه کفش طلایی باشه. این خبر به گوش خواهرای ناتنی رسید. اونا هم پاهای زریف و کوچکی داشتن. برای همین بسیار خوشحال شدن. خبر در همه شهر پیچید. دختران جوانی که در جشن حضور داشتند دسته دسته راهی قصر می تا بخت خودشون را آزمایش کنن. ولی لنگ کفش به پای هیچ کدوم نمی خورد. سرانجام نوبت به دو خواهر ناتنی رسید. دختر بزرگتر در اتاق دیگر در حضور مادرش کوشید کفش رو به اما انگشت پاش مانع پوشیدن کفش بود مادرش پیشنهاد کرد که انگشت پاش رو با کارد ببره مادر گفت اگر ملک بشی از پاهای خود چندان استفاده ای نمی کنی دختر بزرگتر انگشتاش رو برید و پاش رو به زور در کفش جا داد جارچی هم تصمیم گرفت اونو نزد شاهزاده ببره. راه اونا از کنار مزار سیندرلا میگذشت وقتی از اونجا عبور میکردن، دوتا تا قمری که بالای درخت فندق نشسته بودن آواز سر دادند که اون یه عروس قلابیه لنگ کفش کچیکتر از پای اونه از پاهاش خون جاریه چون کفش اندازه پاش نیست. نگاه جارچی به لنگ کفش افتاد که پر از خون بود. اون دختر رو به خونش برگردوند و به خواهر کوچکتر گفت که کفش رو امتحان کنه. اونم برای امتحان کردن به اتاق دیگه رفت و در حضور مادرش سعی کرد کفش رو بپوشه. ولی کفش تنگ بود و به پاش نمیرفت. مادرش چاقوی اوورد و پیشنهاد کرد قسمتی از پاشنه پاش رو ببره. مادر گفت اگر همسر شاهزاده بشی چندان به پاهات نیاز نداری. دختر قسمتی از پاشنه پاش رو برید و به زور و با تحمل درد لنگ کفش رو پا کرد و همراه جارچی راهی قصد شدند. اونها هم به اجبار از کنار مزار مادر سیندرلا عبور می همون همون دوتا قمری که همچنان روی شاخه درخت نشسته بودن آواز سر دادند که برگرد، برگرد، کفش خون آلوده چون برای اون خیلی تنگه، اون عروس شما نیست. چشم جارچی به جراب سفید دختر افتاد که خونالود بود. او این عروس قلابی رو هم به خونش برگردوند و این بار به همراه پدر پادشاه به این خونه اومد شاهزاده از پدر سندرلا پرسید آیا در سرای شما دختر دیگه هم هست؟ اون جواب داد جز دختری که از همسر اولم دارم نه او سندرلا کوچیکه که احتمالا شایستگی شما رو نداره شاهزاده گفت اونو بیارین مادر ناتنی گفت: نه، دلم نمیخواد شما اونو ببینین. اون خیلی کسیفه. شاهزاده اصرار کرد که باید سیندرلا رو بیارن تا خودش اونو ببینه. بالاخره سیندرلا رو صدا کردن. سیندرلا دست روی خودش رو شست، کمی به خودش رسید، بعد نزد شاهزاده آمد و تعظیم کرد. شاهزاده لنگ کفش طلایی رو بهش داد. او روی چهار پایه نشست، کفش چوبی سنگین رو از پای چپش در آورد و کفش طلایی رو بپا کرد. کفش کاملا اندازش بود. وقتی سیندرلا سرش رو بلند کرد و به شاهزاده نگاه کرد، بیدرنگ شاهزاده اونو شناخت و فهمید این همون دختریه که در جشن باهاش میرقصیده و با شادی فریاد زد این همون عروسیه که دنبالش بودم. مادر و خواهران ناتنی از شنیدن این حرف بسیار خشمگین شدند. اونها از شدت عصبانیت رنگشون مثل گچ سفید شده بود. شاهزاده بدون اینکه به خشم اونا توجه سیندرلا رو بر اسب سوار کرد و با خودش برد. وقتی از کنار درخت فندق میگذشتند روی چمن دو تا قمری ندا سر دادند که، دختری زیبا و شایسته کفشهایش خونه نیست. او که اکنون در کنار شاهزاده است عروس واقعی است. همونطور که اونا از جاده می اون دوتا پرنده پریدن و روی شانه های سندرلا نشستن. یکی روی شانه راستش و دیگری روی شانه چپ. وقتی روز جشن عروسی فرا رسید، دو خواهر ناتنی که وانمود میکردند در خوشبختی سیندرلا سهیم هستند در مراسم بودند وقتی همراهان عروس و داماد به طرف کلیسا می‌رفتند یکی از خواهرها طرف راست و دیگری طرف چپ عروس ایستاد کبوترهایی که روی شانه عروس نشسته بودند هر کدام یکی از چشم‌های خواهرای ناتنی را با نوک خودشون درآوردند در راه بازگشت خواهران ناتنی جای خودشون رو عوض کردن و کبوترها این بار چشم دیگه اونها رو هم درآوردن اون دوتا به خاطر پستی و درویی که داشتن تا آخر عمر نابینا باقی موندن و سیندرلا خوشبخت و شاد در کنار شاهزاده زندگی کرد See you